بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة و السلام على سيدنا و نبینا محمد و على آله تعبينا تحرير المعصومین لا سیما بقيه الله في الارض اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام واليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة اما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع بیا الله ورسله وملائكته اجمعین السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديق الشهيد السلام على الحسن والحسين سیدای شباب اهل الجنه اجمعین السلام على علی علی ابن الحسین زین العابدین السلام علی محمد ابن علی باغر علم النبی السلام علی جعفر ابن محمد الصادق السلام علی موسی بن جعفر الکاظم السلام على علی بن الرزا. السلام علي ابن موسی رضا السلام علی محمد ابن علی الجواد السلام على علي بن محمد الن السلام على الحسن بن علي الزكي الاسكري السلام على الحجت ابن الحسن القائم المهدي السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين السلام عليك يا مولاي وابن مولاي سلام مخلص لك في الولاية و انك الامام المهدي قولا و فعلا و انت قسطا وعدلا بعد ما ملعت ظلما وجورا جورا فعجل الله فرجك وقرب زمانك و کسر انصارك و اعوانك و انجز لك ما وعدك و استغل قال الحسين عليه السلام منع ادیوکم ایلا کتاب الله و صنّة نبیه، فاین نصنّة قد امیت، ولبدعت قد عهیت، فاین تسمعوا و غولی و تطیع و عمري اهده کم سبیل رشاد. مسحذرید که در طول این چند شب، به ارز رساندم که مبانی برای تحقق هدف انبیا در طول تاریخ نبوت و به ویژه در رابطه با ما مسلمین در تاریخ اسلام وجود داشته است ما با الهام از فرمایشات ابی عبدالله الحسین از یک طرف و نحوه عمل در واقعه آشورا به صورت عملی از طرف دیگر تبیین اون حضرت را در معرفی موانع این تحقق بررسی می کنیم و آیا ما به عنوان شیعیان و پیروان اون بزرگوار با الهامی که از مکتب و گفتار و اعمالش داریم در رابطه با زدودن این موانع چه نقشی داریم و چه می بکنیم ارز کردم که گروهی در معرفت نسبت به وحی قائل بودند توقع شما از وحی زیاد است وحی را در یک محدوده بسیار مختصر زندگی فردی ببینید و لذا در طول تاریخ همیشه بوده اند و الانم هستند. در گوشه و کنار عالم افرادی که از وحی استفاده کردن به تعالی و تکامل فردی رسیدن اما اگر سخن از تعالی اجتماعی است و جامعه ایدئال و مدینه فاضله میخواهید این را از وحی متوقع نباشید تا دیشب به اینجا رسندیم، که هم در طول تاریخ از صدر اسلام برخی در مقابل مکتب انبیا ایستادند و این گونه مطالب را مطرح کردن و لذا صدی برای تحقق هدف انبیا شدند و هم در زمان ما الان در گوشه و کنار عالم حتی به عنوان پیروان مکتب پیامبر اسلام و معتقدین به وحی و قرآن این سخنان را گفته‌اند این یکی از موانع تحقق هدف انبیاست یعنی تا زمانی که ما ایمان باور اعتقاد نداشته باشیم که وحی می تواند ما را به سعادت برساند و مدینه فاضله ایجاد کند هست اگر چون این باوری نداشتیم چگونه متوقع تحققش هستیم و دیگر نوبت به وظیفه و رسالت ما در دفع موانع تحقق نمی رسد. لذا احتیاج به معرفت درست داریم این معرفت هم از درون دین برای ما حاصل می شود که مختصری به آیات و روایات اشاره کردم هم از بروندینی که امشب اجازه میخوام نمونه هایی رو از بروندینی در این رابطه بحث کنم سؤالاتی که چه کتبی به بنده رسیده چه برخی عزیزان حضوری و شفایی گفتن من خواهش میکنم تا شب آخر صبر کنن اینایی که به ذهن شما زده و پرسیدید اصلا در روال بحث بنده هست وارد خواهم شد مثلا از دید برخی از عزیزان این سوال شده این که ما اصرار به به وحی برگردیم ببینیم انبیا چی گفتن این همون حالت افراطی سلفیگری داعشی نمی شود که اونها هم ادعا میکنن ما میخواهیم به صدر اسلام برگردیم نه یا اگر برخی این سوال به ذهنشون زده ما اگر بخواهیم به وحی و نبوت برگردیم احکامی در قرآن وجود دارد دستوراتی در سنت نبوی هست به قول برخی سوال کنندگان با عقل امروزی و خرد جمعی سازگار نیست این رو چه کار کنیم اصلا بنده همینه که واقعا می توان به اینجا رسید که ما بگوییم وحی مطالبی دارد که با عقل سازگار نیست پس عقل بیاید یا مثل دسته دوم شویم که هنوز بهش نرسیدم چون عقل با وحی سازگار نیست عقل و بذاریم کنار وحی و بگیریم یا مثل دسته اول بشیم بگیم چون عقل با وحی سازگار نیست ما یه چیزایی به وحی بی خودمون بیایم کمبوداشو جبران کنیم که الان بنده فعلا قسمت اولش رو دارم بحث میکنم و به این اشکالات هم خواهم پرداخت حالا عنایت بفرمایید و اما از نظر بروندینی ما از قدیم الا ایام به اندازه‌ای که تاریخ گواهی میدهد. قبل از گواهی تاریخ ما قضاوتی نمیتوانیم داشته باشیم لذا اون چرا که مدارک و منابع میگوید اینکه ما یک مدینه فازل ای داشته باشیم یک جامعه ایدعالی پیدا کنیم بشر از نظر اجتماعی جامعهش جامعه قابل توجهی باشد برای متفکرین حکما فلاسفه مطرح بوده و این رو اشاره می‌کردند. مثلا در کتاب قوانین افلاطون که آقای محمد حسن لطفی ترجمه کرده صفحه 123 سه هزار سال قبل افلاطون میگه شبیه حرفی که دیشب از رسون عقل کردم پیداییه بهترین قوانین تنها اونجا امکان پذیر است که قدرتی کامل و مطلق با دانایی و خویشتنداری راستین حرف انصافا دقیقه، دانایی علم که ما در نگاه دروندینی این دانایی کامل را گفتیم علم. لدنی از طرف خدا خیشتنداری راستین خیشتنداری راستین در فرهنگ دروندینی می شود اسمت اوج دانایی علم لدنی اوج خیشتنداری و هوا را کنار گذاشتن میشه اسمت من فعلا بحثم بروندینیه ولی فقط اشاره می کنم این که در قرآن کریم ذات اقدس الهی میفرماید و جعلنا هم اعمتن یهدون به امرنا ما اونا رو قرار دادیم امامان ام جمع امام یهدون به امرنا به امر ما هدایت کنن ما قدرت هدایت به اونها دادیم دو تا خصیصه در ادامه این آیه برای این ائمه مشخص کرده لما صبروا و کانو به آیاتنا غنون بزرگان از مفسرین در این دو مکس زیادی کردند میفرمایند بالاترین و عالی ترین حالت صبر استقامت و استادگی در برابر هوای نفس و لغزش گوناگون گوناگونه شیطانی و غریزی و حیوانی است لذا بالاترین مقام سبر به اسمت منتهی می شود اما ادامهش فرمود لما سبرو و کانو به آیاتنای و عالیترین درجه ایقان، به آیات الهی بر مبنای علم لدن نیست یعنی هم تو جنبه باور و شناخت و آگاهی به بالاترین درجه هم از نظر خیشتنداری و رفتار و عمل به بالاترین درجه حالا من حرف فعلا بروندینی رو بزنم شاید دوباره باز ما آیاتی که حالا این حرفایی که امشب من میخوام از حکما و داخلی، خارجی، اسلامی، غربی به اندازه‌ای که وقت اجازه بده مطرح کنم ریشه این حرفا تماماً آیات قرآنشم به لطف الهی میتونم براتون بخونم پس یک افلاطون پیدایی بهترین قوانین تنها اونجا امکان پذیر است که قدرتی کامل و مطلق با دانایی و خیشتنداری راستین در یک چن جمع شوند و در غیر این صورت محال است یعنی چی؟ سه هزار سال قبل در کتاب قوانین افلاطون آقا قرنهاست تو دانشگاه های مختلف کره زمین تو رشته فلسفه، کلام، حقوق اینا داره تدریس میشه و متفکرین دارن روش بحث میکنن اینجوری نیست که ما همینجوری بخوایم سرسری رد کنیم یا سرسری قبول کنیم باید روی این حرفا فکر کرد چرا یک آدمی که سه هزار سال آراش نمیگم اشتباه نکرده نمیگم هرچی گفته درسته نه این رو نمیگیم اما به هر حال سه هزار سال است دانشگاه های دنیا داره هنوز رو آثارش بحث میکنه بررسی میکنه خیلی جاهاشو داره استفاده میکنه یه همچه آدمی میگه اگر میخواهید بهترین قوانین به تعبیری که ما شبهای قبل قرآنی بحث کردیم بهترین حکم بهترین دستور العمل بهترین تشریع فرقی نمیکنه حالا لغات و کلمات و مختلف بگیریم واقعیت که تغییر نمیکنه. بهترین قوانین تنها اونجا امکان پذیر است که قدرتی کامل و مطلق با دانایی و خیشتنداری راستین، علم الهی خطا پذیر، خیشتنداری اسمت هوا در راه نیافتن در یک تنجم شود یه فردی باشه که این قدرت رو پیدا کنه و در غیر این صورت محال است یعنی من افلاطون، فیلسوف معروف انچنانی که شما سه هزار سال دارید رو آثار من کار میکنید من میگم اگه یه چیزی نشه نمیشه شما بهترین قوانین که بتونه جوامه رو به سعادت برسونه پیدا نمیشه پس من به سعادت نمیرسه این نظر حالا بیایم یه کمی بعد از تاریخ اسلام خیلی فعلا من قدیما رو فرق نزنم. فارابی میدونید یکی از حکما معروف اسلامی است خیلی قدیمیه هزار سال قبل. آرایی در رابطه با مدینه فاضله داره مدینه فاضله اصطلاح فلسفیه در بین حکما که چیکار کنیم؟ یه جامعه سعادتمند خوشبخت، حقوق ها حفظ بشه افراد سالم زندگی کنن ادالت اجتماعی حاکم باشه، مردم بتونن همون جور که مثال می زدم مثل یه خانواده ای که شما ببینید پدر مقامش حفظ مادر مقامش بس ها محفوظ حقوق محفوظ باشه دروغ نباشه خیانت نباشه راحت زندگی کنن به اون هدف عالی رو بر مبنای این جمع عالی با هم حرکت کنن پیش برن اینو تحت عنوان عن دار فارابی رسالتون فی آراء اهل المدینه طرف فازله صفه پنجاب دو رئیس مدینه باید فیلسوفی باشد که علم خود را از مبدع وحی میگیرد در واقع رئیس مدینه فاضله باید نبی باشد فارابی هزار سال قبل رسالتون فی آراء اهل المدینه الفازله صفحه پنجاب حالا چرا این حرفو میزنه؟ اجازه بدید بحثش حالا میکنیم فعلا دارم نقل قولها رو میگم افلاتون میگه علمش کامل باشه خیشتنداری راستین داشته باشه فارابی میگه منی که دارم تره مدینه فازله میدم باید کسی باشه که به یک قدرت دیگری متصل باشه سهروردی حکیم اشراقی معروف ایرانی میگه انسان مدنیه به طبع است نیازمند مشارکت با دیگران عقل انسان ها متعارض یکدیگر است ببینید استدلال داره میکنه انسان ها قرار هستند هم جمع بشند عقل ها با هم در میفته این یه چیزی میگه اون یه چیزی میگه بحث دیشب فیما شجره بینهم مشاجره میکنن درگیری دارن و میگه به نظر من ایکس خوبه اون میگه به نظر من ایگر خوبه با همدیگه میشینن ممکن این اختلاف آرار هم به این راحتی نتونن حل کنن حالا که جوریه هست وجود حکیم و عدل گستری که دارای نفس متعالی و آگاه از حقایق. و معید از عالم نور و جبروت باشد و مردم را به حق و صراط مستقیم هدایت کند ضروری است این ضرورت ضرورت عقلیه میگه عقل حالا بعد انشاءالله بحثشو میکنیم براتون اگر خدا را حکیم میدانیم ببینید ما دو دسته میشیم یه دستهی که میگیم خدا نه که گفتیم ما اینو گذاشتیم کنار دیگه داریم بحث میکنیم چی نزاشته وحی تحقق بیابه یعنی خدا رو قبول کردیم حالا داریم میگیم این وحی چقدر میتونه کارایی داشته باشه و چجوری باید تحقق بیابه پس میایم جز دسته دوم خدا رو قبول کردیم خدا رو حکیم میدونیم خدا رو قادر میدونیم خدا رو عادل میدونیم وقتی نظام بشری این گونه است که با همین عقلها هم به جان همدیگه میفتند، با قرارعس که به جان هم دیگه میفتند الا ماشالله. با عقلها هم که به جان هم دیگه میفتند. اونم در الظاهر متمدن ترین دوران تاریخ بشر ال ظاهر قرنبیشتم و بیست تا حالا که ما پیش اومدیم. همین علم، همین فلسفه، همین دانشگاه ها، همین صنعت و تکنولوژی، تعارض را بر مبنای اختلاف آرا و قرائز تا به کجا پیش برده که وقتی از یک متفکر برخی این را به راسل نسبت میدن برخی به انشته نسبت میدن ظاهرا از هر دو هم وارد شده گفتن به نظر شما جنگ جهانی سوم آغاز خواهد شد چون بعد از جریان جنگ جهانی دوم بشر به وحشت افتاد چه خبره؟ اینقدر کشتار؟ اینقدر انسونها به جان هم دیگه افتادن؟ طبق آمار سازمان ملل متحد 17 میلیون لیتر خون خالص انسونها در جنگ جهانی دوم به زمین ریخته شد و چه خبر کره زمین الان؟ لحظه ای نیست که مظلومی کشته نشود سانیه ای نیست که بمبی در یک جا منفجر نکنند و چه و چه در کره زمین لذا بعد از جنگ جهانی دوم با این نگرانی از این فیلسوف فرسیدن به نظر شما جنگ جهانی سوم آغاز می شود گفت نمیدانم، اما انقدر میدانم که اگر جنگ جهانی چهارم آغاز شود ابزار بیل و کلنگ خواهد بود یعنی این بشر چنان به جون هم میخواد بیفته همه چیز از بین ببره دوباره با پیل و شروع بشه اینا که دیگه ما تو قرن قرنبیستون شاهدیم میگه لذا یک حکیم مثل سهروردی چه میگه؟ میگه وقتی اینجوریه پس وجود حکیم و عدل گستری که دارای نفس متعالی و آگاه از حقائق و معید از عالم نور و جبروت باشد و مردم را به حق و صراط مستقیم هدایت کند ضروری است من یه مثال ارز کنم ما یک مزرعه رو احداث می کنیم مثلا فرض کنید باقی سیب این خاک آماده کردیم درختای سیب و ردیف کاشتیم همه امکانات رو فراهم کردیم اما از امروز به بعد میتونم آبیاری کنم آبیاری نمیکنم میتونم یه افرادی رو تو این باغ بذارم هرس کنه قرار نمیدم میتونم یه افرادی رو در اینجا بگمارم که سمپاشی به موقع بکنه تا درخت‌ها آفت زده نشه نمیکنم بعد درخت آفت زده میشه درخت رشد نمیکنه درخت خشک میشه به عقل من در ایجاد این مزرعه خورده وارد هست یا نه میخوان اینو بگن اگه خدای حکیم است انسانی را که با این اقتضا خلق کرده نباید یک عادل گستری را که معید از عالم نور و جبروت باشد قرار بده این با عقل و تطبیق نمیکنه پس حکمت خدا زیر سوال میره کتاب مجموعه مصنفات سهروردی جلد اول التلویحات صفحه 95 و 96 ادامش در جای دیگر نیاز انسان به چنین شخصی بیش از نیاز او به بعضی از اجزای بدن خود است من اینجا یک توضیح مختصری ارز کنم چون به درد بحث میخوره وگرنه اون شبه خیلی بحث انگیزه و کار داره ببینید ما وقتی قائلیم خدا خالق ماست خب خدا ما را آفریده چشم قرار داده ببینیم چون ما به دیدن نیازمندیم گوش قرار داده بشنویم چون ما به شنیدن نیازمندیم معده قرار داده چون ما به حزم غذا و جهاز حازمه نیازمندیم حتی برای حکمت خدا در رابطه با خلقت فرد این حرف را حکما زدهاند ابن سینا چون هم پزشک بوده هم فیلسوف تو این زمینه قلم فرساییهای زیادی کرده آقا وقتی که ما در رحم مادر در حال رشد بودیم اونجا که من احتیاج به معده نداشتم اونجا که من احتیاج به چشم نداشتم ببینم اونجا که من احتیاج به گوش نداشتم ولی حکیمی که خالق منه میدونه قرار من از رحم مادر به این دنیا بیام اگه قرار در این دنیا تعالی پیدا کنم هم معده میخوام هم چشم میخوام هم گوش میخوام اینا رو قرار میده حالا اگر یک انسان ناقص العز به دنیا آمد خلاف حکمت الهی نیست دخالت عواملی که هماهنگ با سنت خدا نیست نقص عذر ایجاد میکنه این تیترش دارم میگم حالا سهروردی این قاعده عقلی رو چی میگه میگه نسبت به وجود جسمی فردی من اگر بعضی اجزا کمبود داشته باشه اگر من مقصر نباشم حکمت خدا رو با زیر سوال ببرم خدای حکیم عاطل چرا اینجوری کرده اما در جامعه نبودن یک انسان کامل که واسطه فیض الهی و خلق خدا باشد اگر مردم نمیپذیرند تقصیر مردمه ولی از طرف خدا کوتاهی نشه اون نباشد از اینکه بدن من اعضاش همراه نباشه اون به حکمت خدا بیشتر لطمه میزنه خیلی عمیق کرده خب سهروردیه یه آدم زیرکه عبارت بخونم نیاز انسان به چنین شخصی بیش از نیاز او به بعضی از اجزای بدن خودست زیرا بودن چون این شخصی در عالم تو پرانتز یک کلام بگم اخه هی دارم برمیگردم دروندینی اینا فعلا بحث با بروندینی ولی یه اشاره میکنم شما در دروندینی چی میگید؟ لولالهجه ختل ارزو به احله این مبنای عقلی فلسفی فارابی بر مبنای حکمت خودش بیان کرده افلاطون بر مبنای فلسفه خودش بیان میکنه سهروردی بر مبنای فلسفه اشراق مطرح میکنه حالا میگم فلاسفه دیگه چی گفتن زیرا بودن چون این شخصی در عالم که مصالح عام را میان انسان ها به اولویت بیشتری نسبت به برخی از اجزا برای بدن دارد و انایت ازلی کامل از آن است که چون این مسلحت بزرگی را فرو گذارد مجموعه مصنفات جلد سه صفحه 454 455 خب اینم از سهروردی به عنوان یک نمونه اجازه بدید از ملا صدرا هم در تفسیر سوره اعلی صفحه 348 مطلبی بخوانم. حاکم یک قدیس و یک ولی الهی است در سفر من الحق الالخلق الخلق نکته عمیق عقلی هم فلسفی هم عرفانی رو اشاره کرده که حالا یه مقداری وقت میخواد میشکافم حاکم یک قدیس و یک ولی است در سفر من الحق الخلق مراتب کمال را به پایان برده و از فیوزات الهی بهرمند گردیده و در حد مشترک و واسطه بین عالم امر و عالم خلق قرار گرفته و پذیرای حق و خلق است چون این انسانی مظهر دین و سیاست است عجب حرفی عجب حرفی آخ که انسان ها از این مکاتب دورن آخ که نسل متفکر را از این گونه اندیشه ها کنار نگردشتند وگرنه ببینید چه فهمیدن و چه سخنان جالبی گفتند من یک اشاره بکنم چی میخواد بگه شاهکار ملا صدرا بعد از یک عمر همکار فکری و علمی و تحقیقی هم شهود عرفانی و سیر و سلوک الله به اینجا رسیده که کتابی نوشته الاسفار الاربعه چار سفر سفرهای چارگانه تمام نهجل اسفار اربعه که حکمت متعالیه ملا صدراست این چار سفر را در توضیح میده لا غیر ولی نهجلدی که برخی از بزرگان فلسفه یه جلدشو اومدن شرح کنن ده جلد 500صد شده. حالا این چهار سفر چیه یک سیرون من الخلق الحق. ما تو خلقیم ما تو این عالمیم ولی قرار حرکت کنیم به سوی خدا بریم. اینجا کف قوس صعود است نهایت قوس نزول غوس نزول لله نهایتش اومده اینجا قوس نزول کف قوس سعود است انا علیها راجعون قرار برگردیم حالا از این کف که عالم خلق است عالم ماده است عالم ظلمت است عالم تعلقات است عالم وابستگی هاست عالم درگیری هاست اگر عدالت گسترده نشود اگر اونچنانی که قرار در این عالم ماده یک حالت جالب کاملی حک فرمانه شود مانع صعود به سوی حضرت حق می شود لذا اگر در آیات قرآن کریم یکی از هدفهای بعثت را لهیغوم ناس و بلغست گفتن با عنوان هدف مقدمی است نه هدف نهایی یعنی چی لقد ارسلنا رسولنا بلبینات، و انزلنا احمل کتاب والمیزان لیقوم الناس و بلقست این برای اینه که در این کف قوس سعود شرائط سعود فرد و جامعه را برای بازگشت به سوی حضرت حق فراهم کند وگرنه اصل چیست و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوهی الی انهو لا اله الا انا فعبدون اینم تصریح قرآن کریمه ولی حالا در این کف قوس سعود ما اگر قرار حرکت کنیم پیش برویم به سوی الله چگونه است سیرون من الخلق الالحق حرکت کنیم به سوی حق خب حالا به سوی حق میریم سفر دوم سیرون من الحق الحق در خود حقشناسی حقیقت جویی حقیقت پویی حقیقت گویی مظهر حق شدن باید کاملا اونجا کار کنیم حالا این کار رو کردیم بعد چی؟ سیرون من الحق الخلق حالا با اون حالت حقانیتی که پیدا کردید بیایید در دل خلق قرار بگیرید. خب حالا که در دل خلق قرار گرفتید چه کنید؟ سیرون من الخلق فلخلق بلحق در میان خلق با خلق با معیار حق. این ملا صدرا میگه حالا کسی که قرار در این خلق خلق را حقی کند اگر این چار سفر سه سفر قبلی را طی کرده باشد در سفر چهارم صلاحیت سیر دادن خلق را به سوی حق ندارد عجب حرف امیقیه ببینید با یه توضیح ساده تری ارز کنم میام تو دنیای محسوس مادی خودمون کلاسی رو دایر کردیم، شخصی شف علم، کلاس اول ابتدایی، رف به اوجش رسید استاد فیزیک. حالا برمیگرده میاد تو کلاس بقیه دستشونو بگیره بی بیاره بالا. اگر خودش در این سیر، اونچه را که لازمه تعلیم دادن، لازمه رشد دادن شاگردانش که نیازمنده به این رشد است چی نکرده باشد حق سر کلاس رفتن داره این که در آیات شبهای قبل عرض کردم ان الحکم الا لله به ذات فقط خدا حاکم است ولی به تبع و بر مبنای جعل الهی که قرار میدهد در ادامه بحث میکنیم یک قدرتی که هم بر تکوین اهاده داشته باشد هم بر تشریع احاد داشته باشد این در این عالم اگر قرار انسان باشه انسانی که سیر من الحق به را به گونه انجام داده که سیرون من الحق ال الخلق به تایید حق باشد حالا میتونه مردم رو به حق برسونه لذا ما میگیم ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش به این دلیل و رفای حرفی میزنن انصافا قشنگه میگن چه کسی میتونه ولی خدا باشه حجت الهی باشه میگن دو دست داشته باشه خب منم که دارم نه منظور از دستیه دست کنایه از قدرت توانمندیه ید خلقی ید ربی با ید ربی در با رب در ارتباط باشد با ید خلقی با خلق در ارتباط باشد از رب بگیرد به خلق برساند خلق را بگیرد به رب برساند لذا اونایی که معنا رو فهمیدن استادم می پرمودن. تو ایوان نجف اومدم واردشم برای زیارت امیر المؤمنین علیه السلام هشتاد سال قبل مرحوم آیت الله کمپانی که امثال آقای بهجت افتخارشون بود که شاگرد مکتبش بودن ریالی بوده شخصی بوده چی میخواییم راجع به کمپانی بگیم که دهان آدم میچاد این مرد چی بود چی بود تو فقر اولین در حوزه تو فلسفه اولین در حوزه تو عرفان اولین در حوزه تو اخلاق اولین در حوزه و و و میگه وقتی اومدم وارد بشم دیدم یه عبا افتاده یه عبا افتاده من گفتم این عبای کیه ولی کمی پف کرده است خوب دقیق شدم دیدم آقای کمپانیه اینجوری افتاده داره آستان امیر المؤمنین رو میبوسه و این بدن از شدت لرزه زیر عبا ایه که داره تکم شناختم مرموم های کمپانی ما طلبه جوونی بودیم میخواستیم از اساطید یاد بگیریم ایستادیم این مرد خدا بلند شد به پهنای صورت عشق و حالی داره وارد میشه رفتم جلو درس بگیرم آقا شما فرمود تا سر در آستان اولیای الهی نسائید به جایی نمیرسید. چی فهمیده بودن؟ اولین مقام علمی آقا اینا رو فهمیدن همونگونه که اگه میخوای با در زندگی فردید به جایی برسی باید در ارتباط با اونایی باشی که غرار از اونا بگیری در زندگی جمعیمونم حالا میرسیم به اونجا ملا صدرا میگه حاکم یک قدیس و یک ولی الهی است در سفر من الحق به ال مراتب کمال را به پایان برده و از فیوزات الهی بره من گردیده و در حد مشترک و واسطه بین عالم امر و عالم خلق قرار گرفته و پذیرای حق و خلق است چون این انسانی مظهر دین و سیاست است خب حالا من الان بخوام از بقیه اندیشمندانی که جزء حکما عرفای رفای اسلامیان بخونم چون چشمم به ساعت وقت اجازه نمیده بقیهشونو میذارم فردا شب بذارید چند تا از متفکرین غیرمسلمان بگم ولی در این حال گویا متوجه این مطلب اونا هم شدن با، ولی بر مبنای مسیری که خودشون داشتن خوب دقت کنید اگر افلاتون اونجوری میگه بر مبنای سیر فلسفی خودش به این رسیده لذا این انابینی که مثلا شیخ شهابودین سهروردی گفت نگفت این اناوینی که مثلا ملا صدرا گفت نگفت اما به صورت کلی باید این علم مطلق باشد ایشتنداری راستین داشته باشد بخوایم تطبیق بدیم یکی میشه فرقی نمیکنه. حالا من بیام اجازه بدید در بعضی از متفکرین مغرب زمین تو همین قرون اخیر یکیش ویلدورانته کتابی داره به نام لذات فلسفه خیلی وقت هم نیچه 50 سال فوت کرده صفحه 292 اختلاف دنیای قدیم با دنیای ماشینی جدید فقط در وسایل است نه در مقاصد چه خواهید گفت اگر همه پیشرفت‌های ما تنها اصلاح روش‌ها و وسایل باشد نه بهبود قایات و مقاصد ببینید میگه شما اگر اومدید برای این انسان چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی بالاخره باید غایت و مقصدی در نظر بگیرید این سیری که در طول بیست قرن که ما حالا تاریخ مدونیر که مطرح میکنه و این سی غرن تا رسیده به اینجا خیلی چیزا عوض شده ولی بهبود چیه وسائله مقاصد را چقدر تونستند؟ مثلا من یه نمونه ارز میکنم اعلامیه حقوق بشر شاهکار تعالی بشر بیستم بعد از اون همه خسارت علاج واقع رو قبل از وقوع بکنیم خیلی قشنگ تا اینکه خسارت ببینیم بعد به فکر علاج بیفتیم بعد از این همه مشکلات در جنگ جهانی اول و دوم و غیره حقوقدانان متفکرین اندیشمندان اعلامیه حقوق بشر نوشتن اینو به عنوان یک شاهکار بشر در این قرن حرفهای خوبی زده شده اصل اول انسانها ها آزادند تا جایی که به آزادی دیگران لطمه نزنند. ال ظاهر بشر چه پیشرفتی کرده؟ چه حرف خوبی فهمیده؟ آقا چه آزادی منو از من میگیری من آزادم البته تا جایی که آزادیه به شما لطمه نزنم لذا بر این مبنا شما الان تو امریکا هم تو ساختمون خودتون تو محل کار خودتون تو اتاق خودتون عذر میخوام ببخشید مشروب الکلی بخورید اونقدر عربده بکشی بالا بری پایین بیای خودتو بزنی خودتو بکشی هیچ کاری کسی به تو نداره آزادی کسی حق نداره به شما چیزی بگه اما اگر اومدی از در خونت بیرون عربده کشیدی همسایه اذیت شد پلیس میاد میگیرده آقا شما درست آزادی ولی نه اینکه آزادی دیگری رو لطمه بزنی میگه ببینید بشر به چه رشدی رسیده این خرد جمعیه دیگه داری اینجوری درست میکنه اما همینجا دقت کنید 1400 سال قبل در حقوق الهی اونایی که به اونجا متسلن از اونجا گرفتند چی گفت تا جایی که به آزادی دیگران و آزادی خودشون لطمه نزنن تا همانگونه که حق نداری مشروب بخوری بیرون از خونه اربده بکشی همسایه عذیت بشه تا حق نداری خودت هم عذیت کنی تا امانت خدایی خدای تو راضی نیست خود تو عذیت کنی خب این که خیلی مترقیانه تره و به حرفایی که دیشب خوندم ما اصل ثابت نداریم اصل ثابت نداریم این اصل مربوط به 1400 سال قبله یا 1400 سال دیگه بیاید. عقل میتونه بگه شما اگه قرار راجب آزادی حرفی بزنی از این حرف خشنگتر نمیشه زد. میشه زد آزادی تا جایی که به آزادی دیگران لطمه نزنی ولی به آزادی لطمه نزنی. حالا من رابطه اقل و وحی و براتون انشالله بحث میکنم. اگر حکمی از طرف خدا اومد، اقل میفهمد، نمیفهمد، چگونه، آیا میشه بگه بعد، حالا ما خرد جمعی رو بیاریم، حکم خدا رو عوض کنیم، فعلا تو تیتر میگم، با دخالت اقلمون برای تغییر حکم خدا نظام الهی تحقق نمیابد. همینویش که بشر در طول تاریخ داشته. یه روز یک کمی بهتر بوده. یه روز یک کمی بدتر بوده. یه روز اقتصادش بالت. یه زمانی تو همین اروپا مدینه فاضله از نظر اقتصادی بود. حالا تدبشتر اومد. خودشونم گرفتاری های اقتصادی به چه صورتی داره مطرح میشه یه زمانی برای بشر مدینه فاضله تحقق آرمان مارکس بود اونم تقش در آمد و هاکذا یک کمی دقیق بشیم کوتاه نظر یک مرحله رو نبینیم در طول تاریخ این نشیب و فرازهایی که شده اینا باید فکر متفکر رو به کار ببره آقا کار رو باید به کاردان داد کاردان مطلق اولیه ذات اقدس الائیه و این انتظار ظهور امام الزمان یه معناش اینه یعنی چی؟ یعنی آقا ادالت تامه مدینه فاضله دو اصل از طرف خدا یک اصل از طرف شما دو اصل از طرف خدا قانون خدایی مجری الهی اصل از طرف شما پذیرش شما آمادگی شما شما نپذیری قانون خدا میره پس پستو شما نپذیری مجری الهی میره قائب میشه پس پرده هزار سال دو هزار سال این نظام الهیه حالا اگه در دوران قیبتشه با سوژه از او بگیری لذا دیشب تیتر گفتم هنوزم بحث نکردم اگه قرار اجتهاد کنیم در دوران غیبت اجتهاد در مقابل نس نه اجتحاد تالا عرض میکنم فرقش چیه خب اینجا آقای ویلدوران این حرفو زده اجازه بدید یه مطلب دیگری رو که همین آقای ویلدوران در لذات فلسفه صفحه 226 انتقاد به اسپنسر میکنه. اسپنسر اومد همین حرفای که مثلا ما دیگه این معنویات رو بذاریم کنار بعضی مسائل دیگه هم بیایم خودمون شبیه همین حرفایی که این شبا من از بعضی‌ها کردم میگه ضرری ویلدوران یه آدم مطرحیه تاریخ تمدنش که در بحث تاریخ تمدن مطرح این کتاب لذات فلسفهشم برای خودش کتابی است ضرری که متوجه مدارس و دانشگاه های ماست بیشتر از نظریه تربیتی اسپنسر است که تربیت را سازگار کردن انسان با محیط خود تعریف کرده است یعنی باید تربیت سازگاری انسان با فطرتش باشه نه سازگاری با محیط، چون سازگاری با محیط خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو، حالا فعلا جامعه اینجوری میخواد، ایشون میگه بدبختی اصر ما اینه، تربیتی که فقط علمی باشد، علمی جا به من این نه نالج، برای مبنای همین شرایط فعلی محسوساتی که داریم می نگریم. تربیتی که فقط علمی باشد محصولش جز ابزار چیزی نیست شخص را از زیبایی بیگانه می سازد و او را از حکمت جدا می کند. برای دنیا بهتر آن بود که اسپنسر کتاب نمین بشت یه صاحب نظر تربیتی اسپنسر نظرش هم توی این مغرب زمین مطرح شد یک صاحب نظر ویلدوران میگه ای کاش این کتاب رو ننوشته بود و ما بیچاره بدبختیم خود ویلدوران دم اشتباهات تعجیبی کرده خودش هم یه حرفایی زده یه عده دیگه پیدا شدن اومدن خب اینجا حالا زود انوز قضابت کنم آقا راسل از نظر مغز فلسفی میدونید دیگه تو قرن بیستم راسل یه قولی بوده از نظر دین منکر خدا منکر معنویت ولی این آدم چی میگه؟ ناخداگاه تفکر فلسفی وادارش کرده بگه چی بگه؟ کاری که منظوران فقط درآمد باشد مسائل مادی زندگی روزمره مف... نتیجه مفیدی بار نخواهد آورد برای چنین نتیجه‌ای باید کاری پیشه کرد که در آن ایمان به یک فرد به یک مرام به یک قایت نهفته باشد کتاب زناشویی و اخلاق از راسل خب حالا که قرار ایمان به یک فرد فردی که کامل انسان کامل یا انسان کامل نیست اگه انسان کامل نیست من امروز ایمانمو بهمی میارم فردا میارم سراغ خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رو استاد محمدتقی جعفری یه وقت سر یه بحثی برای بعضی شاگرداشون داشت توضیح میداد میگو من تو یه سن شیفته اون دانشمند شدم کتابش و فلان یه حرفا و بالا پایین فلان بعد از یه مدتی دلموزک برو برو حمو دعبی که داشت خداش بیا مرزه. با اون شوخی ها برگ گفت با در خونم برو برو از خونم برو بیرون رفتم سراغ اون یکی اسم می برد حالا کاری بعد رفتم سراغ اون بعد رفتم سراغ اون بعد آخری به این نتیج رسیدم برید آقا برید کاری با شما ندارم من قران دارم من نهج البلاغه دارم من خدا دارم حالا با اون تعبیر خاص خودش نه یعنی ما حالا از بقیه استفاده نکنیم ولی بحث که آقا این امروز یه چیزی میگه فردا عوض میکنه قانون اساسی بسیاری از این کشورهای علاز ظاهر مترقی متمدن پیشرفته علمی در مغرب زمین چقدر تبصره و تذکره خورده بد عوض شده بعد یه قانون دیگه جاش بزوشتن بابا آخی یا خدا هست یا نیست دیگه اگه خدا نیست که آش خالته بخوری پاته نخوری پاته همینه دیگه تو سر هم دیگه بذاریم تا بالاخره دنیا تمام بشه ولی اگر خدا هست حکیمه فکری نکرده برای ما که راسل بیاد بگه باید ایمان به یک مرام و ایمان به یک فرد باید باشه خب فردی که کامل نباشه من چجوری بهش ایمان بیارم بنده برخی از این نقل قولایی که دیشب براتون خوندم نمیخوام اسم رو ببرم از دوستان خود من بودن اگر با هم برخورد کنیم سریع هم به خودشون میگم حاضرم تفاوت 180 درجه رو در طول 20 سال 25 سال تو نوشته‌هاشون نشون بدم که یه بارم به یک از در خارج از ایران گفتم گفتم شما 20 سال قبل این حرفو زدی الان این حرفو میزنی اگه منا تو زنده باشیم 20 سال دیگه چی خواهی گفت مگه بشر بازی است مگه شوخیه که ما با انسون با یه خرگوش آزمایش کنین ها،, کن این ها؟ صد تا امشب بدیم به دانشگی های دانشکده پزشکی دو اتاق تشریح تشویر کنن، بندازن بیرون تا یه روزی یه آدم بتونن تشویر کنن، بشره، این بنده خداست، این قرار سیره الله پیدا کنه، سر عبی عبدالله بالای نیزه میرود برای اینکه که حق ثابت بماند، زینب به اون عظمت به اسارت می روند. برای که با دین بازی نشود شش ماهر رو دست پرپر میکنه کنه برای چی؟ و این شعار تو ام با شعورش آلمگیر شود و این دین محمد صلی الله علیه لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی اگر دین جدم جز با کشت شدن من باور جا نمی شود شمشیرها مرا در بر بگیرید و خواهرشم زینب جانم به فدایت زینب آه چی بگم از همین جا وارد کاخ ابن زیاد شده کجا دارالاماره کوفه دارالاماره کوفه کجاست مقر حکومت علی که زینب اینجا برای خانمای کوفه درس تفسیر میداده حالا به عنوان اسیر وارد شده یک فاسقه فاجره آلوده ای که تو تاریخ مشهور به حرامزادگی‌اند ابن زیاد پسر زیاده زیاد پدرش مشخص نیست لذا در تاریخ بهش میگن ابن مرجانه یعنی پسر مرجانه که مادرشه یعنی باباش معلوم نیست یک همچو خانواده ای رو بر جامعه اسلامی مسلط کردند. ادعای خلافت اسلامی میکنه بر چخت قدرت تکیه زده سر سبت پیانبر خمسه طیبه را که پیامبر بوسه بر لبانش زده و کرارا فریاد زده الله من احب حسین حسینون منی و انا من حسین الحسن و الحسین امامان غاما او غعدا در قرآن فریاد برآورده اتی الله و اتی الرسول و اول الامر من فریاد براورده ما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى وهكذا حالا ایرو بعنوان سرش آورده خارجی زینب اسیر بعدم میخواد شماطت بکنه ما صنع الله بك زینب خدا با شما چه کرد یه دفعه صدای علی تو دارالاماره پیچید میگن تونتونه صدای علی حالت حالت علیه یک عظمتی با چنون قدرت و سلابت فرمود یبن مرجانه یعنی ای ای که شما را به حکومتی شما را به خلافتی شما را به تحقق هدف انبیاتی ابن مرجانه والله ما رعیتو الا جمیلا خدا قسم جز زیبایی چیزی ندیدیم چرا زیبایی سر حسینه برای اینکه روشن کردم چجوری روشن کردم یه محرمی امریکا بودم از لاس وگاس دعوت کردن جایگاه کسافتکاری در کره زمین که خدا یا تو شاهدی صادقانه میگم من یه شب تا صبحی که تو این شهر بودم و برای سخنرانی رفتم عزیزانی که همراه من بودن رفتیم و برگشتیم شب تا صبح تو هتل من گریه کردم هزار اونقدر آلوده می دیدم با این چشم تاریک و دل تاریک هم حس می کردم فضا چه خبره که هم اتاقی های من صبح گفتن چرا چشم دنقدر باد کرده گفتم من به خاطر وظیفه آمدم ولی با خودم فکر می کردم من امشب اینجا بمیرم در چه فضای آلوده ای تو همچه محیطی لاو بلاو یه این ساختمونها یه سر به فلک کشیده زرق و وبر یه دفعه یک پرچم عجیبی السلام علیک یا ابا عبدالله با ماشین از لوسانجلس می رفتیم همین که لابلای این ساختمون چشمم به این افتاد به این دوست راننده گفتم یه ام اینجا باست نام محبوب دیدم حسین جان چه کردی؟ تو لابلای ساختمون های لاس وگاس اومدی؟ اینه که زینب تو کاخ ابن زیاد میگه والله ما تو الا جمیلا بله باش حالا چند روزه دنیا میره خیال کردید که این زرگ و برگای چند بحثمال واقعیت عالمی که باید دید حالا برگردم فرصت راسل اینو میگه یه تیکم اجازه بدید از جورسارتون در ششبال علمش بگم بعد حالا بقیه یه حتی اندیشمندان جدید میمونه فردا شب اینا رو جمع کنم کتاب تاریخ علم معروفه شاید دوستان آشنا باشن شش باله که در اونجا مطرح کرده میگه علم در بعضی زمینه ترقیات عظیم و شگفت کرده است ولی در زمینه دیگر مثلا سیاست ملی یا بین المللی که مربوط است به روابط انسان با یکدیگر هنوز خود را ریشخند میکنیم جورج سارتن داره میگه حالا ما بخوایم ب... آه میگه ما, تو... نو... ما داریم مسخره میکنیم خودمونو ما مو... مطالب اولیه رو در رابطه با مسائل اجتماعی توش مندیم لذا بحث مثلث هنر و دین و علم را مطرح میکنند دیگه چون مثل اون حکمها رابطه با عالم بالا رو ندیده لذا مجبور شده بیاد در کنار علم هنر و دین رو به این صورت مطرح کنه میگه آقا نمیشه باید بریم باید دین رو مطرح بکنیم باید یه جوری بکشونیم وسط خب امشب دیگه وقتم اجازه نمیده حالا بذارید من از بقیه دانشمندان غرب از برخی حکما از ابن سینای مطالبیست اینا رو فرد شب بگم جنبندی کنم بعد انشالله رفتش رو با آیات بگم ولی امشب فعلا نتیجه بستا اینجا چی شد آقا انبیا آمدن ماها رو سعادت مند کنن به سوی خدا حرکت کنیم و اگر کسی بگه که آقا بشر در زندگی فردی میتونه کامل بشه شما سلمان فارسی میتونید داشته باشید ابی قفاری میتونید داشته باشید فزه میتونید داشته باشید اما یه جامعه ایدئال نمیتونید داشته باشید ما میگیم هم به دلیل عقل نه هم به دلیل نقل نه شما وقتی در موجودات دیگر غیر از انسان مثل مثلا زنبور اصل که زندگی اجتماعی خدا براش قرار داده شون هدایتشون جبری جبری یک نظام اجتماعی ایدئال دارن یا ندارن؟ همون خدایی که تکامل اجتماعی زنبور اصل و مرتقان و موریانه رو قرار داده برای انسانی که اشرف مخلوقات است به صورت تشریعی قرار داده با این تفاوت در تکمین به اجبار صورت میگیرد در تشریح خاست مکلف دخیل است. و تا زمانی که مکلف در این خاست همراه با نظام تکوین و تشری نشود نتیجه نمیگیرد. همراه با این نظام تکوین و تشری ما الان گرفتار این تفکریم که نظام تشریع وحی الهی برای اون جامعه ای کافی نیست خودمون آستینامون رو زدیم بالا دست به کار بشیم و داریم می‌بینیم که متفکرین چی میگن نیست ما نیازمند به اونیم به قول ملا صدرا که اگر قرار خلق را به حق برساند تجلی عدالت الهی رو در این عالم تحقق ببخشد او سیر من الحق فلحقش به پای رسیده باشد و بتواند این حرکت رو ایجاد کند و وقت نمونه شما تو کربلا همجور میبینیم همجور میبینیم یه نمونه شما. آقا شما با اینا از بس که ما شنیدیم به صورت روزه به صورت همین نقل وقایه پامنبرها یا تو کتابها خوندیم یه کمی برای ما عادی شده ولی واقعا کمی فکر کنیم یه کاروانی از مدینه اومده مکه از مکه اومده کربلا اجمالا میدونید چه رنج ها که کشیدن چه آوارگیها ها رو که دیدن چه مشکلاتی در این مدت بوده تحویرشون کردن تهدیدشون کردن اذیت و آزار نمودن بعدم محاصره شده اینها رو من یه سفری از سوریه با ماشین از جلو حرم حضرت زینب سلام الله علیها حرکت کردم از راه همون کبیری که اهل بیتو به اسارت آوردن شام رفتیم برای نجف 24 ساعت تولی کشید و همه اون همراه های ما ماشین بود کولر هم داشت آب یخ هم داشتیم فلاکس چای هم داشتیم میتونستیم یه جا توقف کنیم نهار شامیم بخوریم له و لبرده وارد شدیم این مسیر رو اینا با اون شرائط با اما حالا این چیه؟ آقای یه تاریخ به من نشون بدید یک منبع به من نشون بدید بزرگش، کوچکش، پسرش، دخترش، جوانش، نوجوانش یک جا اظهار عجز و شکایت و ذلت کرده باشن همه جا عظمت به رخ کشیدن بله شکایت کردن از جهل مردم شکایت کردن از حماقت مردم شکایت کردن از نادانی مردم ولی نسبت به اون حتی زوده ولی اب نداری اینجا براتون بخونم شب یازدهم چه شبی بود آقا؟ زینب چه کسیه؟ زینبی که امام شناستر از حضرت زینب تو سهرای کربلا کسی پیدا میشه؟ علاقه من سر به امام حسین از زینب پیدا میشه الان هم مسئولیت با او خیام آتش ددن بچه ها رو تو بیابونها دبندن امام سجاد بیمار با اون شرایط سر عبی عبدالله رو بریدن بردن اجساد متحر رو توی گودال و تو خیمه اسب دبندن و, و و و حالا این ببینید ازامت را شب از سلوبر و محرنگ نیست به جزبان این که مرغ شب نیست بثابت همین نور کمرنگ رنگ ما بر اج ساد و افتاده در قصرگاه از این خیمه بنگر کمی دورتر سیاهی بیاید تو را در نظر که باشد که افتاده بر روی خاک که آید از ناله سوزناک ملائک دهند ده از سما این نوید بوبت خواهر پادشاه شهید مهیندخت میر عرب زینبس بنازم که گرم نماز شب است بر و نیاز و بسوز و گداز تو گویی که زهرا بود در نماز چنان است که هرگز ندیده قمی. زیاد خدا نیست قافل دمی ولی خوشتلو دلو دختر مرتضاست ز زدل راضی و بر رضای خداست جوون سیزده سالش آقا یه سیزده ساله اگه بخواید عادی باشه اینا معید به نور عالم جبروت نیستن انصاف نیست که ما نسبت به مقام اینها انقدر ای وعد انصافی بکنیم اینا رو پایین بیاریم یه جوون سیزده ساله اونم جور سیزده سالهی؟ دو سالشه که جلو چشمش دیدن زهر به بابا دادن وقتی تشت آوردن جلو بابا هی خون برمیگردونه یازده سال قربت مظلومیت خانه نشینی اموش امام حسین رو دیده شاهد بوده که توی مسجد و نبی بالا منبر به جدش علی ابن ابی طالب میدن و تهمت میزنن و ناسزا میگن و و و حالا شب آشوراس، ابی عبدالله داره موعزه میکنه، سفارش میکنه، وسیعت میکنه، همه رو آماده میکنه، هر کی نمیخواد برا، فردا قراره همه ما کشته بشیم، یه دفعه سر بلند کرد، امو جان، منم بله، حضرت غیر مستقیم سوال کرد، عزیز امو، فرزندم، مرگ در نظر چی بونست بابا جون، احلام الاسد، حرف بود، و عمل نداده. ندادن اینا چه خانواده یه جوان من گشتم من نوعی رو ارز میکنم منو شما گشتیم و خوندیم و دیدیم غیر از علی و آل علی در این عالم سمول و محبوبی که بیارزد دل به او بدیم پیدا نکردیم و لذا از اعماق جانمان با افتخار در هر جای دنیا میگوییم هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم ای بچهش احلام نل اصل فردام نشون داد حالا نزدیک شد یه دفعه اومد مامان عموم خیلی غریب شده چون میدونید تا اصحاب بودن نمیذاشتن از بنی هاشم کسی بره اصحاب نزاشتن اولی از بنی هاشم هم حضرت علی اکبر رفت که میدونید مادر علی هم رف شهید شد مادر گفت پسرم سفارش بابات این بود تا که دو سالت بود بابات همیشه میگفت کربلای حسین یادتون نره اومد پیش امو میگن تا امو چشمش میگن برادر زاده افتاد این دوتا هم دیگر رو بغل کردن تو مقاتل داره انقدر گریه کردن که هر دو از حال رفتن اینا رو به حال آوردن زرهی که اندازه یه سیزده ساله باشه پیدا نمیشد جسم جسه هم جسه یه ساله که حالا خیلی چیز نیست حتی تو مقاتل اینو داره وقتی اومد میدان ایش شمشیری که به شهایل بود گاهی به زمین کشیده میشد زره خیلی گشاد بود یه بنده کفش منم اومدم از حق دفاع کنم خب اینا فهمیدن این پسر امام حسن کیمه با این خانواده دارن دورشو گرفتن انقدر با شمشیر زدن با نیزه زدن با خنجر زدن از اسب زمین میافتاد فریاد زد اموجان جان من هم رفتم امو ولی آرزو دارم امو یه بار دیگه تو رو ببینم تو مقاتل داره حسین مثل باز شکاری خودش و رسون شمشیریم بر اونور می اینا رو از دوره قاسم جدا کنه اینا وقتی میخواستن جدا بشن با اسب از رو بدن قاسم رد می شدن یه وقت زیر سومع صدای قاسم اومد امو استخونام خونام داره خرد میشه امو رسید سر برادر زاده را به دامد گرفت اما موقعی رسید که قاسم دوتا پاشنه پاش رو زمین میکشید و در حال جان دادن بود حسین فرمود اموجان جان چقدر برام سخت تو رو در این حال ببینم ظلالله علیکه یا مولا